اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر والشفع یه و الفجر و لیال العشر و الشفع و الوطر در عرف مردم اهمیت ارزشمنده با اونا و امولا قسم بخورن بر اثبات مسئله گاهیم در عرف مطرح نیست برای اولین بار بزرگی به یه چیزی قسم میخواره بعد کسب بزرگی میکنه و دیگران نبیرد دنبالش. در جاهلیت دهی زیحجه نبود، شف نبود تا مردم قسم بخوردن، یه قسم بخوردن اما همین که قرآن کریم این آیات رو نازل کرد که قسم خورد به این چیزها در نظر اده زیادی اینا ارزشمند شدن محلوم که این شافوبات یه چیزیه که خدا کسای خورده یا طلوع فجر یه چیزیه که خدا کسای خورده دارای اهمیت یا دهیزی هجی یه چیزی تو شایدی دارای اهمیت کردی این دهر رو این کم کم معلوم شد ولی اولیش فجر ساده تی شب همیشه تاریکی اما آدم دمودمیستم یه گوشی شرق دمی برم کم کم روشن شد. احساسشه روشن شد این روشنی میره بالا بعد از پایین روشنایی منبط میشه اونی که میره واکزه که زنب سرحان اون مثل دوم گرگ صبح نیست اونی که از پایین منتشر میشه صف صادره انتشار ادام پیدا میکنه تا همه اون نصف کره زمین میشه روشن و روز بره خوبی قدرت بزرگ که دل سیایی تاریکه شبه روشن میکنه مردم میکنه میکنه چرا روشن کنن که همه فضال روشن کنن و خدا با قدرت که داره جا مربود کوراته پای اونا تو کار در شب و روز کورات هم ساختنش دست خداست کسی ملدی زمین درست کنه خرش درست کنه حرکت در بیاره اینا رو میشمنن که فجرم یه چیز مهم و قابل قسم خدا قسم میخوریم بین چهارتا کسیم به فجر، کسیم به دههی زیحجه دههی زیحجه همینیتی ما توشیم حالا امروز فردا تاوم میشه نگه روز نهم مردم آماده میشن برن این شالا از مکبه عرفات از زورت هم مقرم شریر اونجا باید باشن بعد هم شبیان، مشرول مشعل الحرام اونجا ببونن تا صبح آفتاب که تلو کرد و وخینای یواش واش بیان طرف مينا. اول اولی برمگ ج... جمرات و بردم بیان طرف مينا دو شب و دو روز بمونن بعد بیان مکه دهیزی حجه ارزشش منحصری به اینه که کارهایی که وارد شده مخصوص خداست اعمال حج مخصوص خداست دیگه وسایت هدایت هم خودشون حج میرفتن اونام کمک میکردن با رفتنشون مردم رو به این عمل، این عمل صرف خدایی ارتباط با بشر نداره بر، با پیغمبر مقدسی با امام مأسومی نداره فقط خداست بره محرم میشن و لبهش بیان بیان کارهایی که مشیر بر خداست، تواف مال خداست، نماز مال خداست روی جمرات به فرمان خداست تا تاموشه بردی این دهیزی هج اعمالش مخصوص به خداست اما جای دیگه واسایت هم تو کارن چون مردم به دلو باسره میتران مستقیم برن زیاد ملاحظه شده در قیل دهی زی حجی دعا برای واسایت اتباهت با واسایت که بردم هر چی اتباهت چون با واسایت وسایت و کمتر باشه واسایت راحتی نار را میتران بفرستن دلف خدا از این جهات. اما در دهی زی حجی دیگه مطرحنی خود و ساییتم می رفتن حج. امام سادق سلوات الله و سلام و هر سال و آئله می رفتن. تنها نه جمعیت کم بود در مشایر و مواقف جمعیت خدا دوست زیاد باشن لذا امام سجاد سلوات الله و سلام و علی از های زیاد می خریدن قبلن یادشو می دادن. بعد می اونجاها اما تامو شد باید سرمایه بهشو می آزادش میکردن میگفتن خودتون می, می که او دوست در خدا شروک شه خلبت شه خوب نیم مشاهده مشهرم هم خدا دوست شروع شد و زیاد به هجی بیشتر برن بیشتر استفاده میکنن نیزا تمام این برنامه هج مربوط به هست. حتی هست حتا هم باید برند پریقمبر اکم می رفت. حضرات هزارات پای پیاده میرفتن. قابل قسمه اعمالی انجام میگیره که این وسط مال خداست اهمیت زیادی داره ش قوت هم مال نماز سب نماز, نماز شب و نماز ف دو تا از نماز های مربوط به نولی شب از این نصف شب به بعد وقتی نماز شب حساب میشه هرچی به صلح آخر شب نزدیکتر باشه فضیلتش بیشتره گفتن اون آخرین نماز از اولین و وسطی ها فضیلتش بیشتری آدم خسته میشه ترک نکنه اونو حتی نماز وقت از همه مهمتره بعدش هم اگه شما خواستی نافلی صبح بخونی که میشه مقدم داشت بر نماز صبح که ترک شهیه و خسته میشم اون همجا زمین این معکده یک فراموش نشد اون شاف او نتیجه داری چون آدم بود اولا شو تا بریسه به شف وطرم. با اون قسم فوردن کهینا تهک نشه برد. آدم این انجام بده برسه با اون باره نزا اینا چون قسم فوردن مهم من هم دستور نشد و انجام اینا با اهمیت سادر شده و هم مردم براش اهمیت قائلن بلی کسان که موافقن و دیده دیگری نگاه میکنه تا انه که موفق نیستن اینا همش اعمالش مربوط به خداست و اخلاص تو شرط و توش نیست از اینجا در اهمیت از چون بررابی عطلی مردم با خدا آشنا بشن اما نمیشد الا با واسطه ای از جنس خود مردم خدا پیغمبر اکم آفرید اممور اینا جنس خود آدمان به زبار خود آدما هاش میزنان می ها میبینن میشوفن باشون دوست میشن تا اون حرفاشونا میزنان رو کار بیفته و بیان جیرو بدون وسایت شدنی نیست. اجازه اینا رو خدا کرد که این دعای اسم جامعی خبیریه وجه داره ان الله تدعون و ان الله شما مردم رو دعوت به خدا میکنید و دلالت میکنید مردم رو به خدا. اینجوری چی خدا اینا رو خلق کرده باشه اینا دعوت کنن مردم رو خودشون پس خودشون. هر کسی با این آشنا شد می‌فهمه نشونجا بهاله. نا اینا صرفاً دعوت کننده و پیشوایین یعنی که جلو افتادنشون مردم رو می‌بره بالا. از این جهت ارزشمندن خدمت بزرگی دارن میکنن چون بدون این نمیشون دیگه مرضون چون خدا را نمیشوند سداش نمیشوند چی ارتباطی باو با ندارن خیلی سخت میرن طرف او عادت کردن چیزی که نبینیم نزا اینا را میبینن وقتی دیدن یا اینا ست درستن میشوند اونجا موشین هر میشه. اما این ازی حجه عملی که مخصوص خود هدف و خدای متعال واسه توش نیست خود و جو دیگران دارم بیرن اون بر. هر سالی نه، تو مردم می رفتن هج، هر سال در هجی اعمالی هم هست که آدم نمیفهمه فهمه فلسفهش چیه برین مثلاً عرفات کارش هم دعا شردن برین زمان شاه ملون اینا که عوضی بودن می رفتم بیخوا نمی شدن بیخوا نمی شدن فاسول وازی می اما کارش کنیم دعاست، دعای خالی بود. مردم می‌نوخه نمیدونن می‌خوانی هر کسی مشمول سرگیشمای شرطی خودش میشه. اما دعای امام صادق دن مخالی مغز ایوا ده دعاس چون دعو فشار زیاد می‌شود. دنب دعای تا فشار نیاد دنب دعا می‌خونی مرن. وی مشکلی نیستی یه فشار که بیاد نتونه حل کنه دعا میکنه باره. نزا دعا با مزیر قلب انجام میگیره. هیچ کسی بدون اون فشار از خدا حل فشار نمیخواهد نزا وقتی دعا میکنیم علامتی نیچه فشار زیاد شده نمیتونی پاید اون درست کنیم متواصل به خدا شده خدا اینا قنیمت امگه بیایی بندندره نزا به بازی موشگل میده تا دعا کنن. ایلا که مشکل ندارن دا نه میکنن چه روی باطمندای شهر دا نه میکنن بیان همه چی داریم بیمه کن فولخای داریم تلفن داریم فارت داریم هم. داریم داریم یعنی اما وقتی گرفتاری بشو میدیم میگن آها فیچری شدیم یا و تا میکنن میگن چی کار کنیم چه عملی انجام بدیم چه نظری که مشکل حل شه فنه اونایی که عادت دارن به داخ بوده مشهور بشن راحتن هم دعا می خونن هم دعا می خونن. به خصوص این دعای که سر سرات لوسه راه ولی این شافر بودن که رایج و همه اینو می ولی این دعا خوندن دعا کردن مهمتر از دعا خوندن دعا خوندن به آدم یاد میدن چه چیزی بخوام آدم نمیری چیزی لازمه اونم نه اینو اینو این لازمه بخواد دعای کردن همون فشاره فشاراد هم احساس میکنه اق میکنه. یه چیزایی هست که باد بخوایم بلد نیستیم نمیخوایم تا خوندن به یاد میده. یه چیزایی هست که نداریم فشار میه مجبوریم دعا کنیم بل فشار اون همون کار شخصی که وشست میشه کهزارش طلاق می گیرهیکی بچهش این مییم که همیشه هست افراد بر حسب حالات خودشون از یکی از این وارده دعا میشن از خدا میخوان میرن مشهد از دعا میکنن میرن کربلا وجود میکنن به هر دعای که هر کجا وفیتر و ما میرن اونجا این همون اثرش ارتباط با خداست آدم بدون مشکل اون طرف. از خدا حکمتش اختیان میکنه که مشیلات بیاد که مردم بیان اونجا می ببینیم اونایی که اسبابشون تکمیله یه برااه های خدا بهشون میده که مجبور میشن این درون در بزنن آقا کار کنیم مشکلشه از این کار خدا برتبر. این دعا اصلش واجه شرید اصلش واجب می شرید نمیشه طور کلی ترک میشه. ترکش به طور سالبه کلی حرام و گناه های کبیر است اما هم تو نماز دم دعا کنی دعا حساب میشه من دعا درخواست از خداست و علامت فقر من و قنای خداست خدا اینو دوسته در دعا اما دیده من نمیام پای خار الا با گریفتاری زن بد اخلاگیر آدم میندزه پسر معتادگیر آدم میندزه فرشتش میکنه ظالم مسلط میشه که به دو منجا آفرده وقتی رم مسئله حل میشه انجا. بارابریم دعایی هم که اثری داری. خدا دوست داری دعا رو امام صادق علیه الفتح که با توجه و حضور انجام می‌گیریش عبادت با این جور توجه توش نداریم. چون بچگاست شده عاقلش در خطر دی. وقتی دعا می‌کنی درست و همون جایی که ایمان داری که خداست می‌خوره اما در سایره عبادت نماز که به نظافت احارش حواس پرتی یا روزه می‌گیری همین جور اما دعا جنسش ماهیتش یوزی که نمیشه بدون توجه به حضور کامل دعا کردن صاحب برابرین دعا عبادت بزرگ عرفه و عرفات عمل بزرگ کار اونجاست ولی یه وقت عرفات به دیگه چیز خصوصی نیست عمل خاصی هم نداره مدتش هم کوتاسته 1 روز بیشتر نمیبره اذا و درست نمیخونم براش مسافری کنید صف میکشن سف می کشند این تو سف تا من گفت اعمال اینجه چی کنید امین که اینجه وایسی چی نگید نارخت ویدید آدم واسه درسته سف بکشه اما شوده دیم همه خود این چقدر بادم مجبور بشور باییس اونجا خیلی کسا صاف بشه برد. خدا هنگیر کردن. جو باییس هیچی هم نگیه تا بیارن بر بیارن بهشون. مین چرا همچین نمی دیگه میخوان جایی هم که خدا درست و وسیننا باییم اجبار تربیت چرا اونجا هرم بگم ا فیل درست کنیم به کیف مبلد بچه کجای رو جای دیگه جی با از جیمیلی صلوات می‌رسه تا میشه اینجا چی بود؟ هکچیسی فیش نو می‌دونی باتیلو بره ناراحت میشی یکی از بسیار بزرگی مفید اونجا اینه کسی نو ماتش یکی دیگه مالی فهاد اینجا دیگه اون سریش میشه. آقا من احتیاجه میشترید من برم درم بکنم جلو درم فزی کاری میکنن گذش میکنن بله. اونجا هم سکه ها ایارش مشخص میشه همین جودیستن فزی حازن گذش میکنن به بر هر حال حج اعمال حج مخصوص خداست لیزا فربندگارمون تانیم دهیدی حجره براش حرمت خاصی قائله به اندازه که در قراری کریم بهش قسم یاد کرده که ما هم باور کنیم به زیارت حج بنص بابونا مهم هم بریم اونجا نرفتیم اونجا همینجا مواظب بندگی به عبادت باشیم این فرق نمی خدا همه جا هست نه تنها اونجا نیست گاهی حضورش در غیر اونجا بیشتری اندازه آدم بر عرفشون بیشتری باورشون کمیتره هنو نیست که این دهی زیارت اجتهادشینید داهای همش در این ده وارد شده همه نشون میده که مخصوص خداست همین لا اله الا الله ادال ریال و دور خداست و توش نیست یا شوا میخونن لا اله الا الله وحده وحده اینا همه مخصوص خداست توش چیزی جز غیر خدا نیست بر وسائت جای دیگه بیشتره تا اینجا او و سایت اثر کردن کار کردن ذهنار رو آماده کردن که این درده مردم بتونن برن طرف زل مقدمه نه طرف مقدمبات خود با هم هم با با مردم ریکتت میکنن بیشتر تایید کنند مردم که باید لذا از با اون ساده افضل شدن اعمال فرمودن اینکه از مکه برگردی مشهول تهیه و تدارک و سفر مکه بعد بشید، این قدر چون نمیرفتن دیگه، ایمانا زیف بود باد. با این بیانات، کار اینستیتوب اینجا، هشتر سال بعد نوبت میرسه به بازگاه اگر بازم بدم، ممید بیس سال دیگه، نوبت برس جمعیت زیاده زیاده، شدن، نفت و باز روز زمین، همه ها وقتی من یه جا ندارم <تصفيق> از هر میلیون هزار نفر میتونم من شما 75 میلیون 75000 تومان این جوری حرف بزنم امیدوارم ان شاء الله خدا وسایل فراهم کنه که اونجا مردم هم بیشتر بتونن جا بگیرن و همه اعمال یه جوری انجام بگیره که مشکلی به وجود نیاره میشه همونجوری که مسئولیت‌ها دادن شود تا اونها هم کاری کنن هم طواف انجام بگیره و هم اینقدر ازدحام نشه اونجا که مردم اون به زحمت بیفتن اعمالشون فاسد چی بشه کاری کرد تا اینا سرشون درد خاره های دیگه اصلی به این کارا نمی رسن مهنه امیدوارم ان خدای خداوند متعال به ذهنشون بندازه یا خودشونو منقرض کنه دیگران میگن که اونا این کارا ان شاءالله به مشکل حج هر مردم بیشتر باشه چون خدا میخواد اونجا یه جوری بشه که بیشتر برن هر کسی بیروم می یا دیستیگیرش میاد،, دیستی گیرش میاد. همی... فرق نمی کنه برد در رویت هست، وقتی خاژی برمیرد خونهش، تا چهار ماه گناه پاش نمی نوستن یعنی تین زیارت دیستیگیریش مده، او نمی میره گناه کنه، اما آروم آروم، او کم میشه، گرایش به گناه بیشتر میشه، تا مثل آدمای معمولی میشه برد یه اثری در که که خدافرمونده در طول عمر، هر مسلمان به شهد سطاعت باید یه وار بره بره. خدای متعال اونا که مشرف نشوندن توفیق تشارو بیده اونام که مشرف شدن اما اونطوری که باید شاید و اونام توفیق بیده برن انشاءالله استفاده کنن نسال عرفای تجیبهی مشرع حج و اونا که با عمل تایید کردن داستان حج رو سی سلاوت خرد الله درگاه